اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعیم یه صلوات بفرستید ان الحجم بروچنیت نیتی هو احد و امکان تحقیق کونه به شرط اشبه و علم انالحجمه خوندم جرو؟ انالحجمه به رچ نیت نیت هو احد الاقوال فیها و انکان تحقیق و یختزی کونه ها به شرط اشبه هفته یه جلسه هم کنفرانس خواهیم داشت بحث جدید رو باید با هم مباحثه کنید باید بیاد بحث جدید رو اینجا غیقایه بدید چون دیگه یه ترم فقه خوندید دیگه یه ترم کنید دیگه دستتون اومده چه جوری باید کار کنید کاری هم ندارد دیگه شرحاشو شناختی رو خودتون میتونید متاجه بشید انشالله یه مقدار از خودتون کار بکشید خب الان دیگه بحث قبلی تمام شده وارد بحث جدید میشیم البته در حیطه همون ارکان نماس میخوایم ببینیم اون تا چیزی که به عنوان روچن اسم بورد آقای شهید اول اینها واقعا روچن هستند و یا اختلافی هستند و اگر تفصیلی قیدی چیزی توشون هست ببینیم چیه مثلا یه نمونش قیام قیام روچنه ولی کدوم قیام؟ باید بگیم کدوم قیام همش یا یه قیام خاصی و آیا اختلافیه یا اجماعیه چیه است اینا رو باید بگیم خدمت حالا دونه دونه بررسی کنیم از همون نیت شروع می‌کنیم نیت روچن است یعنی چی روچن است حکم روچن چیه حکم روچ این است اگر عمدن یا حتی سهون چم زیاد زیادش ها نباید بگید اون که بسیدی روزو بود نباید زیاد رو بگید چم بشه نماز باطل میشه اما زیاد شدنش رو نگفت چون تو بعضی موارد زیاد میشه ولی باطل نمیشه مگم که تقریبا بگید تقریبا اینجوریه که چما زیاد شدنش حتی سهوی هم باشه نماز باطل میشه خب حالا میگه که نیت روچ نست و انمال حکمه به روچ نیت نیت هوا احدال اقواله ها پس روچ بودن نیت اختلافیه یکی از اقوال این است که نیت روچ نست جالبه یعنی اون که قائل نیت روچ نیست قائل به اینه که اگر صحبا نیت نکردی نمازت رو شروع کردی نمازت باطل نیست چیزی به این قائل نیست این عبادت شاید سن 3 شد. نیت نیت زوبله رو نگاه کنید، باور عقیل زوبله رو. همه میگن نیت چیزیه که اگر نبود نماز باطله. اصلاً نگرام همینه چون نماز و عبادات یه افعال قصتی اند. افعال عبادی اند بدون نیت اصلاً محقق نمیشه. من میگم باطل، اصلاً محقق نمیشه. زوبله یه نکته‌ای گفته، یه نکته, گفته. اون نکته خوبیه. و الامن الحجمه به روچ نیت نیت ها احد الاقوالفی ها و انکان تحقیقو خب مگه دیگه روچ نباشه چیه؟ میگه من اطفاقا تحقیق کردم و انکان تحقیقو یکتزی تحقیق اختزای این رو داشت که بگیم نیت شرطه یعنی من نگاش کردم دیدم این به شرط بیشتر شبیه تا به روچ نه یعنی شما نمازت رو باید بخونی ولی به شرط اینکه نیت داشته باشه. اگر نیت نداشته باشه اون نماز به درد نمیشه حاصل نمیشه. خیلی خوب. تو زبده نگاه کنید برای جلسه آینده این رو در یک خط، دو خط اینو یادداشت کنید ببینیم چیه من کل جملهشو میگم که متوجه بشید. زبده میگه آقا، قائلین در مورد نیت یا بعضیاشون میگن شرطه، یا بعضیاشون میگن جزءه. و بعضیاش هم میگن ركنه ببین ركنه یا شرط زبته میگه ها چه شرط باشه چه جز باشه در هر حالتی ركنه یعنی نبودش به معنی نبودو نمازه رکنه ركن هست حتی اگر قائل به شرط بشید پس الان شهید سانی که میگه این شرطه باز همون رکنیتش سر جاش منافاتی نیست که این که شرط بدادیم ولی رُچن هم باشه. چش خاله. حالا اون یه نگاهی بکنید. در یه خط تو خطی اون طاس کنید ببینون چی. شرط همین دیگه زبده میگه شرط بودنش با رُچن بودنش منافات نداره. رُچ رو که تعریف کردیم براتون. شرط همون چیزی که مشروط بدون اون محقق نمیشه. حالا انجام همینه دیگه. اگر صحور هم شما شرط رو نداشتید محقق نمیشه. خیلی خوب. حالا علت این که شهید سانی میگه که این به شرف اشبهه علتش هم فیل جمله بگم حالا اینجا نگفته فیل جمله علتش اینه اگر میخواید نظر شهید سانی رو ببینید کدوم چطاب رو باید ببینید؟ مسالی. یا مسالک رو یا روز الجنان رو این دوتا رو ببینید اونجا توضیح داده معمولا در مورد اینها اینجا هست میگه ببینید نیت جزء نماز هست یا نه؟ نه دیگه شما وقتی نیت میکنید، نیت میکنید چی بخونید؟ نماز با نیت را یا بی نیت را؟ من نیت میکنم، الان نیت میکنم نماز بخوانم. نماز با نیت یا بی نیت اگه بگید با نیت، خب این چیه پس؟ اگر بگید بی نیت پس یعنی جز نیست جز نبود، پس میشه شرطی که از این راه رفته این هم بسهای عقلی که فوقه های مکاتب جبل آمل و تو این وادی زیاد رفتن دیگه آره نجف و تو همین وادی ها هستن اخباری هم از این کارا خیلی خوششون نمیاد دیگه حالا توی اون مبناست دیگه ببینیم مبناشون چجوری هست خب اما دومین رجت القیام پس شهید اول چه اینها رو رجت دانست شهید سانی میگه نیت شرطه در میگه که شرط باشه خب بلاخره روچ دیگه چون نبودش بطلان رو میانه دیگه اما اینا انگار روچنیت رو با جوز بودن ملازم میدونن جوز نباشه دیگه روچنگار نیست اینه انگار اونجوری میدونن با با نه بابا اشبه اینجا اسمه رفت تفصیل داره شبیه تر است به شرط یعنی نیyat جوز نماز راچن باشه یعنی جوز نماز است که نبودش سه باطل باتر میکه شاید سریم میگم من فکر کردم نگاه کردم دیدم که نه این شرط بگیریم بهتره بیشتر به شرط شبیه تابی جوز چیه توضیحات خب خوب قیام فهوار راچنون فل جملت ای بیشترین بیشتر این که تو راچنون ها داره تو همین قیامه اگر از که قیام کدوم قیام یه بحثایی توش هست الان ببینیم میگه که فهوار فل جمله فل جمله یعنی که فیلا کاری نداشته باشید به اون اختلاف که قیام کدوم کدوم قیام ولی فیل جمله بلاخره قیام روژن هست اجماعن یه لحظه من نگاه کن اجماع یه وقت از شما خودتون میرید همه علما رو میبینید مثلا میگید من کتاب ابن جوند رو باید پیدا کنم ببینم کتاب شیخ توسی رو باید ببینم کلینی رو باید ببینم باب سلاتش رو باید ببینم صدق رو باب صلاتش رو ببینم فخور رزا رو ببینم ابن عقیر رو ببینم پدر شیخ صدق رو ببینم هر کتابی داریم حتی ناشناس اسمشو نمیدونیم کتابی به ما رسیده ولی مثل همی فخور زار که نمیدونم مالی چی هست و بعدیا همه شون رو باید ببینم میبینید میبینید و میبینید که همشون گفتن قیام رکنه است این رو میگن محصر. یعنی برای خودتون تحصیلش کردید. یه وقت شما همین اجماع محسل خودتون رو به همبزیت می... میگه ها من گشتم دیدم که اجماع داریم. اون شخص که از شما شنید برایش میشه اجماع منگور. چرا چون شما اجماع رو برایش نقل کردید. اون دیگه تحصیل نکرد. خب اجماعی که حجت از اجماع محسله و قطعاورم هست. اما اجماع منقول توش بحثه بعضی میگن حجتی بعضی میگن حجت. خیلی هم بحث میکنن توی کتابای اصولی خواهید دید شیخ انسالی که پای حرف رسیدید انقدر بحث میکن اجماع رو اجماع منغول آیا حجت هست نه کلی بحث میکنن خب الان اینجا اجماعا قیام روچ نست اجماعش محسل یا منغوله منغوله چون ما نگشتیم که چی نکرده کرده؟ میگه علامه نقل حال علامه علامه نهر کرده برای ما علامه اهل این کارها بود یعنی توی این وادی هست توی این وادی آدم حسابیه آره دیگه علامه اصلا شغلش همینه علامه بودنش تو همین دیگه لذا این نقل حسابیه شخصی همجوری پا نشده بکن بسیار خوب حالا ولاولاهو، اینو بگم، اینجا رو بگم ولاولاهو، این ولاولاهو رو داخل پرانتز بذارید تا اون پایین کافن فل بطلا میگه چیه؟ شاید سنه میگه اگر این اجماع نبود شیخ آیه علامه ادعای اجماع نمی کرد من راحت بودم تا به شما بگم قیام رکن نیست اما چه کنیم که علامه گفته اجماع داره؟ و منم میتونم مخالف اجماع منغول حتی کاری کنم ولولاهو اگر اجماع نبود این اجماع منغول لعمچنل قدحو میشد من قدح کنم ضربه بزنم قدش وارد کنم در روشن بودن قیام چرا آقای شهدیسانی چرا از قیام خوشت نمیاد میگی خوشم میاد ولی لن زیادتهو و نهو لا یبتلا قیام خودش به تنهایی زیادت و نقصانش باعث بطلان نمیشه الان شما مثلا نماز رو خو... نماز دارید میخونید یه دفعه که دارید سوره رو میخونید پاش رو قیام ولی پاشو رو مثلا تسبیحات رو میگید ولی تشهد رو نگفتید ترکت سوامی الان حالا چه سوره رو شروع کرده باشه هم دو سوره رو چه شروع نکرده یادت میاد ای بابا من تشهاد رو نخوندم خب چکار میکنید؟ سری میشید تشهاد رو میخونید بعد دوباره پا میشید ادامه میدید نماز باطل شد خب این چه روچنی اضافه شدنش این چه باطل لک. اما یه دفعه یادتون میاد که من روچن رو اضافه کردم روکو روکو دوباره انجام دادم در راکت قبلی اشکال داره یا نه؟ برای دوگه روچنسن کارش همینه پس قیام با این رکوع خیلی فرق داره قیام اضافه شدنش مشکل ایجاد نمی کنه. لذا شاید سانی میگه آخو جا زیادت و نقصان قیام باعث بطلان نمیشه الا الا مقترانهی به رکوع مگر اینکه به رکوع همراه باشه یعنی شما قیام متصل به رکوع رو انجام ندی. چه در نتیجه؟ محترم به دیگه. رکوع دیگه هم انجام نشه یادت بگه اه من یادم رفت قیام متصل به رکوع در رکعت دوم انجام بدم. میگم خب یعنی چیکار کردی؟ میگه هیچی دیگه از همون هم دو سوره رفتم تو سجده. قیام متصل به رکوع نشود خودی هم نشه پس نماز باطله دیگه. شهید سر میگه دقت کنید میبینید که اینجا باطلانش به خاطر چیه؟ به خاطر رکوع است. پس قیام رو چرا میگی ترج؟ شما جواب بدید به شیدسانی چرا پس قیام رو روچ نمیگیم؟ این چه کار روکو بود که؟ سوالینه الان در این مثالی که زده قیام متصل به روکو رو انجام نداد نماز باطل شد ولی میگیم بطرانش به خاطر روکوه چون روکو رو انجام ندادیم ولی باز میگیم قیام روچ است. چرا؟ چون اجما داریم یکی. چون اجما ما رو مجبور کرده، اجما ما رو تحمیل میکنه میگه بگید قیام روش نست. و الله راحت میگوییم هم رکو روش نه و تمام. ایلا نه، ایلا مختلرانه هی بر و ماآهو یوستر قیام. پس میبینید شاید سانی دردگرفت چیه؟ میگه قیام روش نه، ولی یکی روش تحملیه بر mast. فقها این رو گفتن اجما داریم. البته وقتی اجما داریم ریشش اینه که امام گفته ها اینو بگن اجماع خودش که حجیت بالاساله نداره کل فوقها بگن در مقابل قول امام باشه پشیزی ارزش نداره اگر از اول علما تا آخر قیامت علما همشون بگن این اینجوریه در حال که امام نظرش اون نباشه یک ذره ارزش نداره به خاطر همین اجماع رو تو حجیتش خواهید خوندیه چرا اصلا اجماع حجیته میگن چون این اجماع معصومه حالا اونجا پس قول معصوم این بوده که قیام حجته. لذا ایشون میگه حالا که اجماع داریم به خاطر همون حرف امام نمیتونیم از زیرش در بیریم. و معهوج است معنای قیام با اون رکوع معهوج یعنی با اون رکوع که باعث بطلان میشه یستر معنای قیام. دیگه قیام نیازی نیست. لان الرکوع کافن فل بطلان. پرانتز بسته شد دیگه اینجا درسته اینجا چی شد؟ شهده ثانی اشکال بر روچریت قیام داره ولی خودش قبول داره که شونه اجماع داریم اب نداره من این اشکال و خیلی تهشو نمیگیرم بدم تا آخرش وایس هم بگم که حتما این هست و اینا نه بسیار خوب حرفی دارید سنی بگید رهیمی چی میخواستی بگید یادتر جامز یادتر که رو باشه سی راست مسجده به واسه مطران میشه دیگه رکوع رو کجا برده ثات برده وقتی درس می قیام رو انجام داده یعنی قیام انجام داده از رکوع مستریم رفته به سجده نه بسجده اون قیام بعد از رکوع رو نمیگیم چه قیام قبل از روکو قیام قبل از روکو این قیام قبل از روکو حتما باید به رکوع متصل باشه چون بیا این قیام متصل به رکوعه بعد رکوع نمیکنم همونجوری میره هم خب به سجده خب که متصل به رکوع نشد که این قیام همینجوری شد قیام متصل به یعنی از قیام میری رکوع بعدش بعد از رکوع اون رو نمیگیم آره قیام متصل به رکوع قبلش یه نکته تو عبارت بود زیادتहू و نقصانه او اون زیادت قیام مثال زدم براتون برای نقصان مثال نزدم برای نقصان قیام یعنی جایی که شما یادتون میاد که اه من باید بلند می شدم ولی بلند نشدم این مثالش یه خود سخته یعنی باید فکر کنیم <تصفيق> مثال گیر بیاریم مثلا شما تو سجده یادت میاد که اه من اصلا هم دو سوره رو نشسته خوندم باید پا می شدم هم دو سوره رو نشسته خوندم بعدش هم همون چون رفتم و بعدش هم سجده خب چرا دیگه همون نشسته میدونی این فرض برای کسی درست در میاد؟ برای ماها درست. در نه میاد؟ برای کسی که مثلا مدتها چند سال نشسته نماز خونده عادت کرده الان دیگه خوب شده دردش خوب شده میتونه سرفا باعثه خوند و یه دفعه تو سجده های یادش اومد که اه من باید ایستاده میخوندم خب اینجا الان قیام رو کم کرده ولی باز از اون حیث نمازش باطل نی م تو خب پس میگم یه خورده انگل توش هستی چون چاله اینجا قیام متصل به رکویش هم نیست قیام متصل به رکویش هم نیست اینجا اینو میشه روش بحث کرد پس این, اشک... این مثال رو اونجا بزنید و اشکالش هم اگه جا داشتید بنویسید اونجا. خیلی خب به هیچ زن فرکنو ها اما متسال به رکو از عبارت این هین ازش رو منشود در بیارید هین از کانه چی چی هی نه ازن وقتی این جوریه حالا که اینجوریه فر رکن منهو منحو روچن از قیام یا اینجوری بگو اما متصل بر رکو قیام متصله بر رکو قبلش برید پایین او یوچ الو روچنن چیفت تفق همون اول خطه یا این چه بگیم نه قیام روچن است هر جوریش متصل به رکوب، بعد از رکوب، قبل از رکوب، موقع قراعت، موقع تجبیر، هر کنون. همه این ها قیام ها روچن هست. او برید پایین، یکی دو خط برید پایین تر. او یوژ علا روچنون من مشتم عل ها مشتمل علا روچنن کت تحریم سه تا قول در مورد روچنیت قیام میشه. سه تا رو یه بار بیم، همینجا حفظ کنید. دارستانی، حفظ کن. در مورد قیام سه تا قول میشه گفت یک قیام متصل به رکوب دو قیام مطلقا هر کدوم میخواد باشه سه قیامی رچ است که مشتمل بر رچ نی باشه داریم قیامی که مشتمل ببینیم الان قیامی که توش هم دو سوره هست خب اونچه رچ نیست قیامی که بعد از رکوبه خب توش رچ نیست آ فقط تنها قيام که مشتمل بر رکنه دیام مشتمل بر تکبیرته بهرمان چه نیت و تکبیر توش هست اون راطون می شود. قيام آره. خیلی خوب. این سطر رو بخونیم. برای هر من یه نکته میگه. میگه رو من حالا اون هین زه رو حل نکردید. این ه چیه ؟ حالا که اینجوری شد چه جوری شد؟ آه حالا, زمان. حالا زمان. که اجماع داریم و نمیتونیم از روچنییت قیام در بریم پس یک ک چطور رو باید قبول کنیم. داستانستانی نوشتی هین اس جمل ما ال روچنییت قیام. و روچ من ها اما متصل به رکوه حالا اینجاش یه ذره فنیه دقیقه کنید حواستون نباشه اگر قیام متصله به رکو رکنه است در حالی که شهید همین دو دقیقه پیش گفت که بطلان تربش قیام متصله به رکو بطلان نماز به خاطر چیه؟ رکو. همین دو دقیقه پیش گفتید. به خاطر رکوه است الان میگید که بیاید بگیم همون قیامه روچنه اون وقت ما از شما سوال میپرسید الان قیام متصله به رکوع رو انجام ندادم نماز باطل شد دیگه شما گفتید که رکوعه نیست باطل شده حالا روچنیتش رو بپذیریم یعنی قیام نیست باطل شد ببین آقا قیام نیست باطل شد رکوع نیست باطل شد بابا یه باطل شدن داریم یه معلول داریم و شما میدونید در فلسفه دو تا علت یه معلول نمیتونه داشته باشه. اگر این اتاق گرمه نمیتونه بگید خورشید و بخاری با هم اینو گرمش کردن. جهت فلسفی. عرفان میگه نه. از جهت فلسفی نمیشه اینو گفت. چرا؟ چون حرارتی که خورشید اینجا انداخته اون حرارت جداست. اون حرارت شماره روی حرارتی که بخاری ایجاد کرده حرارت شماله دوه هر کدوم دو معلول برای دوتای علت داریم حالا اینجا یه بطلان داریم محمدی دوتای علت داریم دوتای علتشو بگو کریمی بطلان نماز معلوله علت یکش قیام نیست علت دوش روکو نیست شهید سانی ببینید اینا ورود همین فلسفه اینا به فقه ها فلسفه اینا رو ها وارد فقه کرده اینکه که و د اللتین معلول ان واحد باطله از جح فلسفی این او از تو فقه پیدا شد ب جو. پس اینو تو اون برگ که گفته بودم آخر کتاب داشته باشید. و اونجا آدرس بدید نمونه اینجا نه چون اینجا رو بعددن پیدا نمیکنین. باید یه جایی باش کهدم دست باشه نمونه اسب کاربرد بحث های فلسفی در فقه اینجا هست. اخباری ها پای هف خوندید یادتون باش اینا رو مخالفاً. عقل و مخالف نیستن عقل مگه دیوونه سره طرفی عقل نباید باشه اینا رو مخالفن میگن فلسفه تو فقه نباید باشه حالا این دیگه بزرگان باید تصمیم بگیرن چه این کار درسته یا کار اخباری ها و شما میدونید که فوقه فقهای ما الان اخباری ها رو قبول دارن یا اینا رو اینا رو قبول دارن اخباری ها رو کسی قبول نداره اخباری ها یک نظریه منسوخه دیگه اخباری ها نظریاشون سوخ آره فوشه الان به این نفر بگید اخباری یا دیگه اون چای چه گذاشتید جلوشونو پرت میکنه به دیوارتون یا این چه پامیشه میره دیگه این وای نمیشه اینجوری خیلی خب شاید تصانی میاد این اشکار رو میده من از شما تقاضا دارم انشالله شاء چه وارد شدید پای حرف میکنید دیگه شیش شروع میشه حالا هر موقع دیگه حالتون انقدر جابه جایی هست من یادم نمیره هر واقع وارد فلسفه شدید یه دور حداقل نقل فلسفه رو خیلی خوب بخونید. فلسفه رو باید خوب بخونید. مرحوم امامینام فلسفه رو خوب خونده بودن. حالا اون چه کجا به کار ببریمشون اون یه بس دیگری است. فلسفه ذهنتون رو خیلی منسجم میکنه. اونا که فلسفه نخوندن میبینید که خیلی منسجم نیست طرف. همینجوری از اجامیان دیگر میگید. بل شما فلسفه رو خوب بخو. خیلی خب حالا اینو حلش بریم. شهید سانی میگه که ببینید چه جوری میکنه می‌کنه. میگه توارد العلّتين على معرفه واحد نیست. علت اول، علت دوم. معلول ما کدومه؟ معلول ما فضلان نماز. علت اول نقصان بی علت دو هم نقصان رکوب معلول ما قطلان نماز این دو تا علت از جرت فلسطی درست نیست میگه شما اشتباه کردی، اشتباه کردی. قطلان نماز اصلا اینا علت نیستن اینا علت نیستن اینا و دو تا معرف برای یه معرف ایرانی نداره ایش اصلا الرقم معرف برای معرف داشته باشه چون معرفه معرف یعنی اینو نشون میده به شما نه اینکه علت حقیقی و فلسفیش باشه وجود بطلان از این عدم رکوع نیومده چه ببین علت و مرتبه معل... علت و معلولی اینه معلول وجودش از علت گرفته شده اینو اینجوری نیست بطلان نماز به خاطر مفسده‌ای است مفاسدی داره خدا گفته باطل شد اما از کجا فهمیدیم باطل شد از اینکه اون رکوع رو انجام ندادی معرفه دو تا معرف رادی نداره محلوب. خب اینجا مفصده نیست اینجا که مفصده بس نیست. نداره بله درسته یه مفصده یه بطلان میاره اون مشکل نداره اگر واقعا علت حقیقی رو پیدا کردی یه علت یه معلول در پیش داره ولی اینجا که اونو اون یه اون یه یعنی بحث دیگری است خب فهمیدید؟ این همه توضیح دادم تا بحث معرف و معلول و اینها رو براتون روشن بشه چی؟ ببین؟ اینجوری جنبند کن یا بخواه اینجوری بنویس دو علت بر معلول واحد از جهت فلسفی صحیح نیست و ولی در اینجا دو علت بر معلول واحد نداریم بلکه دو معرف بر یه معرف دیگه میشه دیگه معلول نگیم دو معرف که یک معرف را به ما نشون میده حالا دیگه چه اشکال پس لذا بطلان نماز اشکالی نداره بگیم به خاطر عدم قیام متصل به رکو و عدم رکو بیچه اشکال نداره علت و معلول بگیرید اشکال پیش میاد اینو حتما بعدم بینویزید و یکونو پس عبارت حالا ببینید عبارت هم حل چه براتون و یا کنول و یا الیه نسبت دادن این اسناد به منیه نسبت آن. نسبت دادن اسن نسبت دادن, اسنا... دادن ابطال به گیام. به سبب اینه نه به سبب اینکه این این هم یه الاتیس، اون هم یه الاتیس نه. به سبب کانهی احکال معرفای نه لحول. یکی از دو تا معرف برای بطلام هست و ایریدیام نداره. و یه می گفتم از جهت عرفی ولی دو تا علت میتونه باشه. الان شما میپرسین الان گرمایی که تو این مدرسه دارید ناشی از چند تا علت؟ خورشت هست، گرمای بدن خود ما هست، آفتاب میتابه بعضی وقت اون هست، سه چهار تا علت باعث یه حرف. یه نفر رو چند نفر می کشن. چند نفر با هم مثلا تو مراسم اعدامه پنج نفر با توفنگ یه نفر رو نشانه گیری می کنن. هر پنجتا گرلن می خوره این مرد چند تا علت داره همون پنج نفر اشکال نداره ولی ازت فلسفی مردن او یه علت داره مردی که فلسفه دقیق نگاه می فلسفی دقیق تر نگاه میکنه عرفی عرفی نگاه میکنه حالا این بعد بعدهایل چلا الان فیلن خیلی فقط الان تو زندتون بمونه خیست بخوره اینها بیخبر نباشید ولی تصمیم نگیرید فعلا لازم نیست انتخاب کنید من پایه چار بودم اصلا اینا حالیم نبود اصلا اینا... یعنی چیزی به ما نگفت اینو بگم استادا نمیگن معمولاً البته بعضی‌ها میگن اون بهتره نباید ذهن طلبه رو درگیر کنی ولی من درگیر کردم ذهنتون حالا خوشتون میاد بحث دیگه چوری به نماز میگم یعنی این بحثی هم داشتیم در مورد کسی بود که توی قصره مگی آب میریخ شهید هی مختص میگه دو ساختی‌ها دکتر بحثو اونجا مرچش من این بحثی که چه همش نگاهی داره که ونجور فقط واچه خودتون فرض کنید موقعی که چرا فقط با طرفه ساب نیتو کن اونی که درس داره قال مالر دی اونم چه نیت داره ها شاید البته اونجا حزت اورفی شاید بشه گفت داش نگاه میکرد میگفت اورفن اون چیزی که مشوره اون چه آبدار میریزه دیگه اون که میچرخونه اینو شو چه شو شوینده نیست که اتقوام اونجا شاید فلسفی نبود اورفی بود ولی خب تو همین مایه هاست دیگه یعنی بس تو همین فضا هست که باید ببینین آره خیلی خوب آقا بعدیش رو بریم او رو قیان بگیم آقا جن. اصلا قیان همش روچ همش خب اینجا چه اشکالی پیش میاد خوب من تشهاد یادم رفته بلند شدم حالا یا هم دو شروع کردم یا نه یادم افتاد اه تشهاد نخوندم میشینه خب وقت باطل باید بشه اضافه شد روچ میگه آقا جان دیگه شما یاد گرفته دیگه این حرف از شما بعیده شما باید بگید قیام کلن روچ است ولی اینجا استثنانست یعنی باید که روچ اضافه شد ولی استثنان ایرادی نداره بعد ما میپرسیم مگه استثنان داریم روچ زیاده بشود و نماز باطل نشود میگه دیگه دیروز همین میدی قایب میشی بسارو یادت نمیان دیروز این همه گفتیم ما جلسه قبل اینا همونه دیگه پس ببینید و فی موضعن لا تضبط له بزیادت هی در اون جای که نماز باطل نمی شود با زیادت قیام و نقصان قیام یکون مستثنن که غیر ای. اونجا مستثناست دیگه والله ركن پس ببینید پس بین دو قول خیلی فرق الان من تشهد یادم رفته بلند شدم برای رکعت سوم حالا تسبیحات اربعه رو خوندم یا نخوندم این قیام طبق قول اول ركن ركن نبود. نبود چون اون میگفت قیام متصده به رکوع فقط روچ اما طبق گل روچ نست ولی حجم هر تاش یکیه طبق اولی روچ نبود باطل نمیشد طبق دومی روچ نمیشد ولی استثنان شده حواستون به باشه. باشید ولل لیس لیسم مجموع حالا بنابرای اون اولی چه قیام رو نه مطلقا بلکه قیام متصل به رکو رو فقط روچن بدانیم حالا طرف میاد می که آجی این قیام متصل به رکو از کجا شروع می شود؟ قافله باشی قیام متصل به رکو از چه شروع میشه از همون لحظه الله و اچبر که تو نماز این قیام متصل به رکوه چون تهش رکوه دیگه پس هم سوره هم لذا اگر یه کسی یادش نه حالا فرض کنید دیگه یادش رفت هم دو سوره رو قائما نخوند. میگه ها اینم بالاخره متصل به رکوع دیگه. بالاخره تهش رکوع. پس باطل میشه میگه نه قیام متصل به رکوع یه لحظه است. یه لحظه است. کلی بگیر قیام کلی چه قابل صدق بر همون لحظه آخر. لذا اونو داریم. طبیل شاید یه زاده طبیل علمی و سختش کرده روحت مونه همون لحظه آخر دیگه ببین می که و الال اول دارستانی این ال اول یعنی چی؟ نه. یعنی قول اول که؟ رو چ... چی باشه؟ میگه روی نوز میکه میگه روی نوز یا تصفه روشی ها تصفه دارستانی داشتم دنبال یه چیزی میگشتم بزنم این حالا الهل اول یعنی قیام متصل به رکوع روچن باشد لعیسه وقت مجموع قیام متصل به رکوع رو همش روچن نگیری تا بلل امرول کلیو مرفو خوندم خوبه؟ نظرت دیگه دارید؟ لعیسه مجموع قیام متصل به رکوع روچن بلل امرول کل این بل اگه گفتید چیه؟ بلل چون بله استثمار نمیشه بشه؟ یه حرف عاطف هست. حرف آتفه. بلی الامر کلی یا من ها. امری کلی. امر کلی. یعنی شما این مستاق قیامه از اول تا آخر رو روچ نگیرید. یه امر کلی. چه قابل صدقه. روش بنویسید چه قابل صدقه و لحظه آخر فقط هست. به این مصمه میگو خیلی راحتر بگیم. قیام میگو خیلی راحتر بگ یا لحظه آخر میگفت جزء آخر میگفت خیلی بهتر زید. خیلی خوب حالا خودش میگه میگه من سمع و رو همین حساب از همین جهت نسی القراعته اگر قراعت یادش رفت او ابازه ها نصف قراعت یادش رفت لم تبطل سالتو قافل باش اینو توضیح بده یه بخش از دروات عالیه اما من میگم خب پس تو قراعت بود مگه؟ ما با قراعت چیکار کردیم؟ تو کلشو قیام رو خب، بخش آخرشو بگیرین. این بخش دیگه نداره. این بخش خب پس باید میوف قیام دیگه چرا گفت قراعت یادمون بره باطل نمیشه؟ فهمیدید سوال رو؟ میجون میگه اگر قراعت یادش رفت باطل نمیشه. مگه ما در مورد قراعت صحبت می قراعت چه رولش نیست که؟ پس چرا اینو گم؟ مجموع قیام رو که آه قراعت یادت بره قیام قراعت هم انجام ندادی دیگه این منظورش اینه درسته پس روی این عبارت داشته باشید حالا یا میخواید بنویسید لونزی القراعته او ابازه ها المستلزم لنسیان قیامش اون فراموشی قراعتی چه مستلزمه؟ فراموشیه؟ قیام قراعت هم هست دیگه با نمیشه در حال ج اگر روچون اونم بود باتل میشد. شدد لم تپ تول تو خیلی خب این هم در مورد این بحث پ اول. او یج ال او یج ال روکن و مشتمل الان روچن چه تحریم؟ چه مثال زدید؟ اون قیامی که مشتمل بر روچن باشد مثل تحریمه این روچنه است خیلی خوب حالا اگر شما قیامی که توش تحریمه هست انجام ندادید نماز باطل میشه, میشه با با با چرا؟ چون قیام رو انجام ندادید دیگه. قیامی که طرف بابا قیام مشتمل بر نیت و تکبیر رو انجام ندید خب تکبیر رو انجام ندادید دیگه باطل میشه پس اون علت بطلانه یا این علت بطلانه دوباره دوتا علت شد میخوب با اینو توضیح دادیم دیگه و یوچ الان من قبیل معرفات سابقه اینجا هم دوتا علت بر معلول واحد نیست دوتا معرف بر یه معرفه چرا؟ شهید سانی من تجرب میکنم حواسش نیست ببین این چه قیامی چه توش تکبیر باشه فراموش کنم همیشه اینجون نیست که تکبیر رو هم فراموش کرده باشه تکبیر میگم ولی نیشست متوجه شدید؟ یعنی اینو میخوام بگم میخوام بگم آقای شهید سانی همون قیام به روگوش هم همین بود من رکوع انجام میدم قیام متصل به رکوع رو انجام نمیدم دیدید شاید سانه چه اشتباه کرده تو این دو تا جا فکر کرده حالا قدس سر رو دیگه خدا رحمتش کنه شاید این اشتباه رو داشته نمیخوام بگم حتما چون این ها فقیه اند ما چه فقیه ما کارهای دیگر انجام میدیم موقع کلاس فقط فقه میخونیم یه خورده اونا ف... اصلا ذاتشون فقیه بود فقاهت لزوم اونها قوی تر از بزرگان ما هستند. اما خب به هران این اشکال الان به ذهن من رسید که ببین قیام متصله به رکوع هر وقت فراموش شد یعنی رکوش هم فراموش شده حتما طرف رفته از قیام ببینید من مثال میزنم این مثال رو از قیام حبدالسوله رو خوند بعد میره سجده پیشونیش به موح نرسیده یادش میاد که اه بابا من رکوم رادم رد را. از قیام رفتم به سجد همینجوری با حالت انحنا خمیده خمیده میاد تا روکو. این الان رکوم انجام شد دیگه چون به سجدم نرسیده بود ایرادی نداره مشکل نیست به رکوم رسید الان این چی چم داره قیام متصل به رکوم چم داره خب آقای شهید سانیب بگوید این الان باطله یا نه این باطل است به خاطر همون قیام مدلسل به روکو. در رای که خودش هست. پس ایشون چه هی میگفت قیام نباشه روکوش نیست. پس در واقع به خاطر نبودن روکو باطله. پس نیازی نیست هستم قیام رو. رو بدانیم و این حرفا ها. نمیدونم این تو ذهن شهید سانی نبوده. حالا همین هم. طرف نشسته تکشبیر میگه. قیام مشتمل بر تکبیر رو یادش رفت ولی خود تکبیر رو یادش نره پس چرا هی میگی تواردالاللت ها این رو نمیدونم این ها نا یه علت داره اونم همون قیامه رو ترک کرده نسیانه هم. اینو داشته باشه خیلی خوب وقتی نیاز به این معرف و معرف و این حرف هم نمیدونم تمام این هم بحث قیام این بحث قیام رو میتونید مقاله دو سه ازش بنویسید همین تقریر همین بحث ها اشکالاتی که شد چیزی که به ذهن تو میرسه مراجعه به یک دوتا میشه یه بحث پنج صفحه‌ای درشن یه بحث علمی هم میشه بنویسید از این نوشتن نترسید این ترم دو رو یه ذره یه ذره این مایه درس خوندنتون رو مخصوصا فقه رو زیاد کنید که اینو آثارشو بعداً میبینید دیگر هم کم کنید هیچ کاری به اهمیت اینها نیست من خودم استاد ادبیاتم مسئول ادبیات این مدرسه من هستم ولی میگم الان برای شما فقه خیلی مهم‌تره دائر شد بین که الان یه کار ادبیاتی بکنید یا فخی فخی الان مهم‌تره همونطور که چه قبل ادبیات مهمتر بود آیسه یه نفر گفت میخوام یه فقه بردارم کلاس پای سوم بگید نه الان پای سه کار ادبیات جای خودش یه ذره مایه فقه خونی تو قوی تر کنید به نویسید متنه. به بنویسید بذاری کلار کم کم مراجعه کنید این تلمه دو از این جهت من میخوام یه ذره یه ذره از شما کار بخوام البته اذیتتون نمیکنم نمی کنم ولی توصیه میکنم کار کنید که اشالله نتیجه شو بردم ببینید اما تحریمه آقا تحریمه چی؟ این آیا تکبیراتور احرام آیا روچ نه هست یا نه؟ می فهیت تکبیر منوی یا به دخول و فسلا. آقا منظور از تحریمه تکبیریه است که نه تکبیری و الان ما تو نماز کلی تکبیر داریم هر تکبیری که روچ نیست. اون تکبیری روچ هست که اونو میگید نیت میکنه الان وارد نماز شدم. تا قبل از این میتونستم حرف بزنم، برگردم بخندم ولی با این اکبر چه گفتم همه اینها به من حرام شد، بز تحریم دیگه. اون روچ و الان بقیه تکبیر ها نیست فهیت تکبیر المنوی یا به دخول و فسلاته فمرجه و روچنیت ها اگر قصد ورود به نماز داشتی اون میشه روچ نداشتی اون دیگه روچ نیست اون یه ذکره ذکرم خوبه لعنه ها ذکرون لا تب تلو به مجرده هی. این مجرد ذکر باطل نمی کند و اما روکو فلا اشکالفی روچنیت چی؟ زکشون به مجرد زکش باطل نمیشه این زکش کم و زیادش بگو اینجوری بگو کم و زیاد زکش باطل نمیکنه و اما فلا اشکال افی رکنیتی رکوعو دیگه بحثی توش نیست و یتحتقو بالانهناه الهده به همین حد که خم شدید رکوعو محقق میشه رکوعو انجام شد لذا اگر زیادتش هم به همین مقدار شد دیگه باطل میکنه و مازاد علیه تو رکو ما تمنینه میخوایم آرامش ذکر داره و رفمن از رکو سرتو بلند کنی اینا همشون واجباتون زایدتون بر اون حقیقت رکو. خود رکو همون خم شدنه و یتفرع علیه بطلان ها به زیادت هیچ از ال درنتی اگر شما یه رکوی انجام دادید سهوا ولی توش نه ذکر داش نه تمنینه داش نه, نه هیچ چیز باطله چون رکو شد دیگه اون واجبات رو میخوام چکار خود رکوع محقق شد چزالک یعنی با همون انهناه خالی و علم یز حب ها غیرهو هرچند اگر همراهش ذکر و تومنین و اینها نباشه غیرهو یعنی غیر این انهناه و فیه بحثون تو هواشی گفتن چه بحثی شهیدسانی منظورش چی هست حالا اینو یه نگاهی بکنید هواشی رو و اما از سجود دیگه این بحثش که سجود یه دونش دوتاش مسماش چجوری این میگه که ففی تحق با غیر ما قد عرفتاو که مال دو جلسه پیش بود سلوات بفرستی اللهم صلی اللهم و آل محمد اون فیه بحثان رو بعضی گفتن شیخ توصی گفته که تومنینه جزوه ارکانه در رکو اگر تومنینه نباشه رکو محقق نمیشه یکیش اینه بحثای دیگه هم هست تو حواشی رو ببینید خوبه موفق و معید انشاء خدا نگسته خدا این انهنا یعنی خم شدن نگه منحنی شدن خم شدن ببین به این اندازه خم بشی رکو محقق میشه یعنی به, اندازه به اندازه همون رکو دیگه حالا یکی از بحثانی هم چه جا گفته شده و این خیلی بحث خوبیه شاید شایده ثانی هم مزورش همین بوده که فیه بحثان رو گفت اینه که خم شدن باید به قصد رکو باش ولی اگر یه نفر وسط نماس بوشک. یه لاسه گوش کن حالا چه نشستی نبیگر یه نفر وسط نماز یه دفعه چمر در بیه آخ چمر اینجوری خمشه به اندازه رکو نمازش باطل میشه باطل میشه نه یا من کاش تو رکو نداشتم رکو یه فعل کاستیه خیلی مهمه صرف انحنا کافی نیست الان شما این پیشونیتون میخاره اینو رو زمین اینجوری میچشید چلو تو هم یه نفر نشسته میگه آبی به من سجده میکنه قبول میکنید دینو نه من با تو چی کار دارم خ... لذا این اون فیه بحثون اگر نظر شهید ثانی همین باشه که قصد هم لازمه یا نه این بحث خوبی هم هست چی هایی چنین آم... خودوم تیچرم اتبایش نیم خط یتفر راو علیه بطلان یتفر راو علیه بر این که تحقق رکو به همون مقدار انهناه خالی نه زکر میخواهد نه تومنین نه هیچی خب متفرره برعین این میشه که بین نماز اگر صحفن به همون مدار خم شدی بدون حتی تومنینه بدون زکر گفتن بدون هیچ چیز دیگری خم شدی روکو محقق شد یعنی یه روچ اضافه شد سرمش. از دست میده دیگه آره تومنینه هم بله آرامش تومنینه یعنی اون آرامه میشه. چیزی نداشت باید عبارتش ساده است یه بار